سخنرانی دکتر محمد اصدی گرمارودی موضوع سخندانی تذکیه نفس با توجه به آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیه السلام جلسه یازدهم هم قررحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام و السلام علی سیدنا و نبینا محمد وعلا آله تیبین تاهرین المعصومین لاثی ما الله فی الارزین اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و علیک یعود و السلام سبحان رب کربل عزت اما یسفون و سلامون علی المرسلین و الحمد لله رب العالمين.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 السلام علی السدیگه شهید، السلام علی الحسن و الحسین سید شباب احد الجنه اجمعین، السلام علی ابن الحسین زین العابدین، السلام علی محمد ابن علي باقر علم النبی، السلام علی جعفر ابن محمد الصادق، السلام علی موسى ابن جعفر القاسم. السلام على علی ابن موسی الرضا، السلام على محمد بن علی محمد ابن علي الجباد السلام على علی ابن محمد الحادی السلام على الحسن بن علی حسن ابن علی زکی الاسکری السلام علی حجت ابن الحسن القائم المه فعالا فی کتابه بسم الله الرحمن الرحيم و نفس و سواها تعلح ها، فوجور و تقوا قد اصل همن زكاها ها و قد خواب من دستهاها. این بحثی را که به مناسبت این چند شب ماه مبارک رمضان انتخاب کردیم و امشب شب آخر این سلسله بحث هست جمعندی کنم نتیجه بگیرم، ارز کردم خداوند به ما انسانها نفس داده است سرمایه است بسیار گرنبها و ارزنده که این سرمایه عظیم الهی که به ما داده شده است و نفس نام گرفته انقدر از نظر خود پروردگار عالم مهم است که خداوند و گند بر این نفس یاد می کند با مقدماتی که به شمس و نورانیت شمس و قمر و شب و روز و آسمان و زمین و یعنی مجموعه این عوامل طبیعت که انسان در این طبیعت قرار می گیرد تا در اثر و نفس و با سواها اون نفسی که این انسان دارد در این دل طبیعت به منزله میوه‌ای که روی درختی پیدا شده تا با آب و هوا و خاک و تمام عوامل و ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به قبلت مخوری همه این عوامل در این عالم برای این است که این انسان تعالی پیدا کنه رشد پیدا کنه که این تعالی انسان تحت عنوان تذکیه نفس در قرآن و روایات ما مطرح شده است تذکیه نفس رشد واقعی و نمو حقیقی نفس در همه ابعاد نفسانی است که یک بعد نفسی ما قوه نظری اوست که در جهت نظری رشد و تکامل پیدا کند بدین معنی بفهمد معرفت پیدا کند شناخت و آشنایی نسبت به حقایق بیابد که با همه ارزشی که اصل علم و معرفت دارد معرفت نسبت به خدا، امامان و انبیا، قیامت و معرفت نسبت به خیشتن، خودشناسی، کجا هستم، برای چه هستم، به کجا میروم، چه میکنم، چه باید بکنم، تکلیف من چیست، به سوی عالمی که در حال حرکتم برای آن عالم چه احتیاج دارم؟ اینها را ما به وسیله قوه نظری نفسمون می توانیم پیدا کنیم کسانی که این تلاش را می این معرفت را به دست می در راستای تکامل نظری نفسی پیش می روون. این یک بود بود که تقریبا تا حدودی مبسوط بحث کردیم بعد دیگر قوه عملی نفس نفس ما عمل فعل و حرکت عملی در این عالم می تواند داشته باشد که اگر در هر بعدی از ابعاد ما بخواهیم تکامل پیدا کنیم <تصفح> همانطوری که نیاز به یک سلسله اطلاعات نظری داریم نیازمند به عمل هستیم دیشب این بحث رو آغاز کردم روایت چندتا خوندم آیه شاهد آوردم که اگر یک مسلمان از دید قرآن و سیره ائمه خدا علیه مسلم میخواهد انسان کامل شود قطعاً بدون بروبیا بدون کوچکترین تردیدی اول باید حلال خدا را حلال بداند حرام خدا را حرام کسی که دقت در حلال و حرام ندارد کسی که به واجبات عمل نمی کند. کسی که از محرمات نمی این دو قسمت رو دیشب توضیح دادم که حالا ادامش رو را عرض می کنم هرچه چله بگیرد هرچه ذکر بگوید هرچه ورد یاد داشته باشد و هرچه راه پیدا کند که تکامل روحی به او دهد، غیر ممکن است که این انسان به کمال معنوی که خدا و پیغمبر و امام می برسد ممکن است در بحث یک سلسله قدرت های خارق العاده مثل مرتضان هند مثل مرتازان مسیحی، مرتازان یهودی، مرتازان غیر شیعه یه قدرت های عجیب و غریبی در اثر ریاضت نفس پیدا کند که این دلیل حقانیت نیست اینجا این دو قسمت واجب و حرام انجام دادن فعلی را که خدا می خواهد. ترک از افعالی که خداوند دستور داده این اجازه بدید من یه کمی تحلیل کنم وارد مستحباتش بشم اگر خدا گفته واجب حرام مستحب مکروه سوال چرا خدا فرموده است؟ یا قبل از این سوال که چرا خدا فرموده است؟ خدا فرموده حلال و حرام و مکروه و مستحب و مباه یا نفرموده اول ما اینو در دنیای دین باید برای خودمون مشخص کنیم یا حرام و حلالی در دین نداریم علما در طول تاریخ نعوذ بالله آمده ان جل کرده ان به خرده ما داده ان. خب بحث تحقیق درش بازه انسان محقق حاضر به بحث و گفت و شنود و بررسی مسائل این قرآن رو برداریم باز کنیم یک روایات معصومین رو برداریم مطالعه کنیم انقدر در خصوص حرام و حلال و باید و نباید و انجام یک سلسله اعمال و ترک یک سلسله اعمال نفس سریح قرآنه و نفس سریح گفتار معصومین علیهم السلام پس اینا رو ما چی میگیم؟ بله کسی نیومده تو دنیای اسلام بگوید قرآن حرام و حلال ندارد اعمم حرام و حلال ندارند، بلکه یک حالتی مخصوصاً در این چل پنج سال اخیر در جوامع اسلامی رواج پیدا کرده که این خطرناکه و حتماً و حتماً باید این نکته توجه عمیقی مفضول بشه و اون این که آقا چارده قرن از زمان ائمه گذشته است همه جز... از زمان پیغمبر گذشته همه جزئیات حرام و حلال در قرآن که گفته نشده بله درست همه جزئیات در قرآن نیست این جزئیات حرام و حلال را پیغمبر و امامان بعد از پیغمبر در پرهنگ ما شیعه بیان فرمودم و چ از زمان غیبت کبرای امام زمان علیه السلام کاملا امکان ملاقات و حضوری از امام سوال کردن بر روی ما شیعیان بسته شده یک دسته احادیث و یک سلسله مباحث تاریخی با عنوان سیره معصومین علیهم السلام در لابلای کتابها نهفته شده به دست ما رسیده آیا احادیث جعلی نداریم چرا داریم آیا دروغ تاریخی نداریم چرا داریم آیا دشمنان مکتب اسلام و تشیع نکوشیدن اسرائیلیات را وارد دنیای اسلام کنند و به نام محتوای اسلام به خرد ما مسلمین بدهم چرا داریم پس ما نمیتوانیم به روایات و سیره ائمه و تاریخ اعتماد کنیم همین اجمالا از قرآن یه برداشتی میکنیم همین برای ما کافیست این خطرناک این تفکر خطرناک چرا آیا اگر کسی بناس مجتهد شود اول این نکته رو عرض بکنم اسلام اونقدر منطقی برخورد کرده مکتب تشیع و مذهب امام جعفر صادق علیه السلام اونقدر منطقی برخورد کرده است میگه اگر خودت مجتهد شدی حق تقلید نداری به فتوای خودت باید عمل کنی ولو مرجع نیستی به دیگران فتوا نمیدی اما خودت مجتهدی اما اگر مجتهد نبودی چی؟ اگر مجتهد نشدی کار شما وقت شما شرایط زندگی شما ایجاب نمیکنه قرآن رو تمام زیر و رو کنی روایات معصومین رو بررسی کنی سیره ائمه هدا را ببینی تا حرام چیست حلال چیست تکلیف چیه وظیفه چیه باید چیه نباید چ چی اینا رو بدانی اینجا این بحث ما الان مطرح میکنیم آیا اگر من به ذهنم میرسد روایات جعلی داریم و یک سلسله اسرائیلی یا تو مکتب ما وارد کردن اگر کسی دین شناس است واقعا مجتهد است تخصصش معرفت دینی است او اینها را نفهمیده است این یه مقدار بیامصافی است این کوته نظری است کم لطفیه من با چهار تا کتاب خوندن من با چهار تا اطلاعات دینی پیدا کردن به ذهن من میاد ما احادیث جعلی داریم اما یه مجتهدی که میخواد دین شناس باشد یه عالمی که متخصص معرفت دینیست اوی مطالب رو نمیدونه و حال اینکه در خود این روایات اشاره شده آقا روایات صحیح رو از ناسهی تمیز بدید این نهج الولاغه امیرالمؤمنین علیه السلامه امیر تو نهج الولاغه فرمودن روایات ما را وقتی برای شما بیان می چهار حالت داره یک کتی روایتی را شنیده است مغرضم نیست سوئنیت هم نداره اما روایت رو بد فهمیده و برای شما طبق فهم خودش تعریف میکنه این برای شما حجیت نداره دو کسی <تصفح> روایت رو شنیده است صحیح هم فهمیده غرض هم نداره اون چه که از روایت صحیح فهمیده برای شما نقل میکنه اما این قسمتی از روایته بقیه شو ندیده مثل لا اله هر الا اللهشو دیگه نشنیده این هم برای شما حجیت نداره دسته سوم سوئنیت ندارن غرض هم ندارن مطلبی را که شنیدند برای شما نقل می‌کنم ناسخش منسوخش توضیحات اضافی که با اون اولی با یه مختصر تفاوت اینا بر دسته سوم غرض داره سوئنیت داره عمدن روایات رو جعل کرده عمضان کم و زیاد کرده اینم که حجیت نداره دسته چهارم روایت رو شنیده صحیح فهمیده صحیح نقل کرده عامش و میدونه خاصش و میدونه ناسخش میدونه منسوخش و میدونه این روایت روش تاکید کنید خب اگر کسی میخواد دین رو بشناسه خب بعد از قرآن نهج بلاغه رو نباد نگاه کنه صحیفه رو نباد نگاه کنه این که خود علی در نهج البلاغه سلام الله میفرماید هر کس هر جور روایت نقو کرد بیان نکنید اون وقت می شود اگر کسی دین شناس است من بگویم این که گفته است مثلا باید در این شرایط حجی اینجوری انجام بدی روزه رو باید اینجوری بگیری این نجس این پاکه این آقای کاری ها چی زحمت برای ما درست کردید دل باید پاکی باشه کجا معلوم پیغمبر و امام این همه جزئیات رو گفته باشن اینا رو ما داریم در طول تاریخ انقدر بافتن. اینجا باید به این نکته توجه بشه اگر دین کامل است این قرآنه ولا رتبن ولا یابسن الا پی کتاب مبین اگر این دین و تممت کلمت و رب بکستدغن و عدلا لا مبدل کلماته اصلا یکی از بحثهای های کلامی دقیق ما با مسیحیت و یهودیان و زرتشتیان و سایر مدعیان دین الهی این است که دین شما جزئیات زندگی را ندارد ما از این جهت میگیم اسلام کامله که دیگه بعد از پیغمبر اسلام پیغمبر نمیخواد بیاد که تمام جزئیات زندگی ما را این دین بیان کرده عذر میخوام این مثال رو میزنم در مسلم مناقشه نیست حتی نحوه ورود به دستشویی و خروج از دستشویی را ما تو روایاتمون رو داریم که موقع ورود پای چپ رو بگذارید موقع خروج پای راست رو بگذارید تو مقصد مسجد... تمام این جزئیات رو برای ما بیان کرد اگه نبود که دین کامل نبود بله همه رو ائمه تو مذهب شیعه سرمودن روایات جعلی رو هم دشمنان ما درست کرده ابو حنیفه دو سال شاگرد امام صادقه. اسم اطلیش نعمان خودش میگه لولا سنتان لحلکن نعمان اگه این دو سالی که من شاگردی امام صادق کردم نبود من حلاق شده بودم اما مقام پول ریاست دنیا منصور دوانقی خریدش گفت در مقابل امام صادق علیه السلام یه مکتب جعل کن مکتب درست کرد میگه هرچی امام صادق گفت من خلافشو میگم. فقط نمیدونم در سجده امام صادق میگه چشماتون رو ببندید یا باز کنید من برای مخالفت کرده باشم میگم یا چشمو ببندید یکی رو باز کنید کلااگه مخالف اگه امام گفته هر دو تا رو ببندید شما یکیش باز شده باشه اگه امام گفته هر دو رو باز کنید شما یکی رو بسته باشید که این مخالفت صورت گرفته باشه یعنی اینا رو درسته که جعل کردن و اومدند به همین جهت از همان ابتدا ما دو تا علم معروف در بحث حدیث شناسی داریم علم رجال و علم درایه یعنی انصاف قضیه اینه که یه مقدار دور از انصافه دور از منطقه آدم بگه آقا روایات جل شده از کجا معلومه که این پاکی این نجسی این تهارت این خمس این زکات این امر این نه این فلا اینا رو عیمه گفته باشن اومدن من این تعبیر رو عذر میخوام قصد جسارت ندارم ولی واقعا عقیدا میخوام بگم اگر کسی میخواد دین خدا را بفهمه باید جونش در بیاد جونش بالا میاد تا بتونه حادیث سهی رو از ناتهی جدا کنه علم رجال گذاشتن علم درایه گذاشتن یعنی اگر کسی اسلام شناس نیست خودش رو جای اسلام شناس جازده این خیانت کرده این آبروی دین برده این در مقابل مکتب امام صادق قد علم کرده چرا آقا بنده که پزشکی ولد نیستم حق ندارم متبوا کنم اگه تا بیمار اومدن سراغ من اتفاقی هم نسخه من خوبشون کرد وزارت بهداشت و بهداری و آموزش پزشکی میاد منو معاقی دستگیر میکنن تحویل دادگستری میدن چه حقی داشتی شما متبوا آقا اگر کسی مهندس ساختمان نیست حق نداره به شما نقشه ساختمان بده. مگر مسائل دینشناسی از یک علم پزشکی کمتره، مگر مسائل حرام و حلال خدا رو پی پیبردن از طراحی یک ساختمان کمتره که تخصص مادرزادی داشته باشم بنده. به نظر من اینجاش سیمیه، به نظر من اینجاش صحیحه اگر خدا گفته است من چکارم؟ اگر خدا نگفته است چرا به خدا نسبت بدی؟ لذا میاد اول کاری که یک دینشناس انجام میده اینه عمرش رو صرف میکنه بیاد حدیث صحیح رو از حدیث ناسهی جدا کنه علم رجال و علم درایه انقدر در این زمین کار کردن اینقدر در این زمین زحمت کشیدن که در گذشته یک سنت جالبی در بین علمای دین رواج داشت الان هم در بین خواص هست اجازه نقل روایت می دادن این یعنی چی؟ یعنی اگه بنده بخوام وارد مقوله دین شناسی بشم یک عالم متبحر در این رشته به من اجازه نقل روایت داده یا نه؟ یعنی من حق دارم روایت رو بخونم برای شما در چه صورتی حق دارم بخونم؟ من ایک قدرت تشخیصشو دارم این روایت صحیحه یا ناسحیحه؟ این روایت مبسقه یا این روایت جعلیه؟ این روایت واقعا روایت از معصومه یا ساختن تو روایات وارد کردن برانداز میکردن میگفتن به این ما اجازه نقل روایت میدیم خب پس اگر با این تبحر خودت وارد شدی لازم نیست تقلید کنی خب شما شناختی الان به پتوای خودت عمل میکنی اما اگر خودت با این کیفیت وارد نشدی همونطوری که پیزش نیستید به پزش مراجعه میکنی اون تردی که این تبهر رو داره سی سال، چل سال، بیس پنج سال، سی و پنج سال خونه دل خورده، رنج برده، زحمت کشیده میاد میگه آقا این حلال است این حرامه این واجبه، این مستعبه، این مکروه مباهه اگر فقیه یک کلمه به میل شخصی خودش بگه جهنمیست بعد این خدا چی گفته؟ حیغمبرم حق نداره از خودش بگه امامم حق نداره از خودش بگه لذا وقتی خوارج در مقابل امیر المؤمنین علیه السلام می ایستادن می گفتن لا حکم الا لله حکمی نیست مگر فقط برای خدا امیر المؤمنین علیه السلام چی می فرمودن؟ کلمتو حقه بله کلمه حق لا حکم الا لله یراد و به حل باطل اما اینا بد اراده می حکم حکمان خداست اما کی باید از طرف خدا این حکم برای شما بیان کنه و این حکم اجرا کنه و این حکم بیاره پیغمبر باید بیاره امام تبین کنه تفسیر کنه و اجرا بکنه پس حرام و حلال که ما در فرهنگ شیعی به خصوص چرا میگم فرهنگ شیعی والله تأثیر شیعی نیست رو استدلال میگم رو میار و ملاک میگم چون امشب میخوام جمبندی کنم فرصت نیست وارد بشم منهای فرهنگ شیعی نسبت به این حرار و حلال چگونه وارد میشن حرام و حلالی که در فرهنگ شیعی مکتب امام صادق و امام باغر به ما معرفی کرده عالم دین با خون دل خوردن با تقوای تمام ایار به این معنی اگه نباشه ما فقی قبولش نداریم اگه نباشه مرجع قبولش نداریم اگه نباشه صلاحیت فتوا دادن ندارد صلاحیت تقلید نداره، باید اتقا و علم را شما انتخاب کنید اگر عالم هست تقوای لازم رو برای بیان حکم خدا نداره بازم صلاحیت نداره شما از او طبعیت بکنید تقوایی که برای دین شناسی لازمه در شرحال مرحوم علامه هلی نقل می ازش پرسیدم آقا گوستندی رو ضد کرده این خون شریخته توچاه یا مثلا لاشش افتاده توچاه این آب چاپاکه یا نجسه؟ شاید تا اون زمان مبتلا بهشون نبوده مرحوم علامه هلی هرچه منابع رو بررسی کردند دیدن اگر مقداری از آب رو بکیشن و این رنگ و تعم برگرده آب در اثر اتصال به مخازن زیرزمینی مثل آب کرپاکه اما تو ذهنش این خطور کرد من خودم یه چاه دارم تو حیاتم نکنه علاقه شخصی من به چاه من باعث میشه یه روزی هم این بلا سر من بیاد خب گرونه بخوام این چاه نجسه پر کنم یه چای دیگه بکنم این باعث میشه فتواه اینجوری بدم فرمود این چاه منو پر کنید. که من یک ذره میل شخصی نداشته باشم، چارو پر کرد به بررسی پرداخت، فرمود فتوا همونه که قبلا دادم. یا خودتون اینجوری دین شناس بشید، حرام خدا رو بفهمید، حلال خدا رو بشناسید، یا اگر خودتون این وقتو ندارید، برید دنبال اونهایی که سالمن، من با تقوان برای خدا حرام خدا رو میگه و حلال خدا رو از هیچی هم باکی نداره مرحوم میرزای قمی معاصر فتلیشای قاجاره فتلیشای قاجار به اناوین مختلف میخواست میرزای قمی رو بخره نتونست یه ماه رمزانی استفتا کرد از مرحوم میرزای قمی حضرت آیت الله من وقتی روزه میگیرم عصبانی میشم وقتی عصبانی میشم حکم قتل بیگناه ها رو صادر میکنم. لذا یه بیگنا بیگناه ممکنه کشته بشه. شما اجازه بدید بنده روزه رو بخورم هر چی شد میدم چون خیلی زحمت کشیده بودن در آمد داشتن دیگه کفاره رو بپردازن لذا من حکم قتل بیگناه رو ندم. مرحوم میرزا قمی در جوابش اینو نوشت. حکم خدا را نمی توان داد ولی سلطان را می توان عوض کرد. تو برو کنار اون کسی که روزه نگیرد عصبانی نمیشود و دستور بد سادر نمی کند او جای شما قرار بگیرد شاه عباس با اون قدرت یه بنده خدایی از شنگالش ترسید برای که رفت نجاب پیش مرهوم مقدس اردبیلی اردویلی آقای یه نامه بدید برای شاه عباس که منو بی گناه می خواهد محاخذه کنن. حالا مثلا اینجا دینشو بفروشه تقواشو بفروشه ایمانشو بفروشه چاپلوسی کنه یه کلام مقدس اردبیلی نوش بنده ملک آریت عباس بدان اگر از گناه این بنده خدا درگذرد، امید است که خداوند فردای قیامت از پاره ای از گناهان او بگذرد بنده شاه ولایت مقدس هر دویدی کرد آخه این انسان ها که دین براشون مترهه خدا براشون مترهه و حقیقت دین را حاضر نیستن خب من وقت ندارم او رفته زحمت کشیده خونه دلش خورده حالا اومده به من میگه آجون خون نجسته آب غلیل به محض برخورده با نجاست نجسه. آب مضاف باش نمیتونی وجود بگیری آقا این حرفا قدیمیه یعنی چی آقا خدا گفته یا بگو خدا را قبول ندارم بزه کنار آقا میگه بیهجابی دل از زهرارا میشکند به درد میآورد آقا دل باید پاکی باشد دی. حرفا چیه جواب اولا اگر دل پاکست چشمم پاکه زبانم پاکه دستم پاکه پام پاکه چون دل پاک ای باید در بیرون داشته باشه دل پاک خدا را میپذیرد دل پاکی که خدا را پذیرفته زبان جز اون که خدا بخواد نمیگه گوش جز اون که خدا بخواد نمیشنوه این رو نمیتونیم ما باور کنیم کسی بگوید دل من پاک هست اما و نهی خدا را نپذیرد اگر میگید امرو نحی خدا نیست از کردم این در تحقیق باز دنیای بحث آماده ای قرآن رو داریم، این روایات رو داریم، ولی با ملاک ها نه یا وقت انسان بی میخواد مخواد حرف بزنه با یه دانشجوی از اهل سنت بود تو دانشگاه بحثمون شد قرار شد که بشینیم با هم صحبت کنیم صحبت صحبت سریع روایت اول گفت که بینید با ملاک یا بی ملاک گفت این روایت که شما میگی پیغمبر نگفته گفتم زفت کنید اگر این روایت را پیغمبر نگفته باشد بنده هم ثابت کردید پیغمبر نگفته من از مذهبم رفتن و تحقیق و برگشتن اومدن گفتن نخیر این ویبایت پیغمبر گفته خدای من شاهده ریکم و زیاد میگم گفتم خب حالا چی میفرمایی گفت پیغمبرم گفته برای خودش گفته خب من اینو چی کارش کنم اینو اینه چی کنم جز اینه که بگم آقا رحمت شما زیاد خدا شما ولی خواهشون کنم دیگه دم از پیغمبر نزن چه دروغ میگی؟ یا بگو پیغمبر قبول ندارم خب راحت کن خودتو تو اگه پیغمبر قبول داری آقا پیغمبر گفته حرام حلال یا نه اون وقت بنده بیام ذکر بگم ورد بگم چله داشته باشم چنین چنان اما نماز رو بیتوجه باشم روزه رو بیتوجه باشم خمس رو بیتوجه باشم مصفتی هم حج آقا بابا جن این نیست دین آخه بعد میگیم آقا دین میخواهد جامعه ایدعال بسازد دین میخواهد مدینه فاضله درست کند دین میگه اگر کسی نماز نخواند متعمدن این اصلا متدین نیست دین میگه اگر کسی ضروری دین رو منکر شدیم متدین نیست چگونه بنده به پزشکی مراجعه میکنم به من میگه آقا که شما به گونه است. اگر یک قاشق سرکه خوردی تا یک سال دیگر سینه درد تو باقیس میگم پزشک قبولت دارم حرفتم درسته اما روزی یک فنجان میخوام بخورم که خب من هیچ‌وقت خوب نمیشم دین به من میگه تا شما تقوا داشته باشید ببینید این قرآن منو شماست اخ این چه حالتی یه مقدار روشن فکر معابی تو جامعه ما مقدسات رو زیر پا بذاریم عبادات رو کنار بگذاریم به خیال اینکه آقا در طول 14 قرن از کجا معلومه بله اونایی که خودت اهلش کردن بیا میدون وقت بذار عمر صرف کن خودت قضاوت کن اهلش نیستی بگو از کسانی که عمر صرف کرده در این زمینه بررسی آقا این قرآن من و شماست میگه خودم لیل متقی. یعنی با تقوا نباشید گر آن هدایت نمیکنه. اینه آخره الله از قوک. گرایی ترین با تغوا ترینه. ول آخره تو لیل متقی. مال متقینه. خب تقوا چیه؟ نمازم که در شکسته روزم که بحانه میارم میخورم وجوهات که برای من متره نیست هجاب که برای من متره نیست دروغ و غیبت رو حساسیت نشون بدم یا ندم که برای من متره نیست و و مشکلات فراوان بعدم میگم کجا شد جامعه ایداد حالا بنده یه تصویه هزار دانه بگیرم صبح تا شبم میگم لا اله الا الله چون پیغمبر فرمود لا اله توفلو. اینو پیغمبر فرمود چرا این کتاب پیغمبر میپرد قولو لا اله الا طفل هم معنیشی نیست معنیش اینه که آجون بود، آبد باشید بود، عامل باشید و دستورات خدا را لذا یک واجب خدا را حساسیت نشون دادن میخوایم رستگار بشیم یک دو مرحله پردیمون زندگی خانوادگیمون زندگی اجتماعیمون هر چه قدرت دارید یک بین خود و خدای خودت دو بین خودت و عذای خانواده خودت سه نسبت به جامعه چه کار میتونی بکنی؟ برادرم و خواهرم حلال خدا را حلال بدانید واجبات خدا را مهم بشماری اگر خدا گفته این کار بکن خدا را قبول داری؟ به خدا گفت این کار رو بکن نعوذ بالله نعوذ بالله خدا غرض و مرضی داشت میخواست منو رنج بده من نمیخوام ببینم شما از خواب صبح لذت میبری لذت ببری من صدیست دارم میگم صبح پاشو نماز صبح بخوام نعوزه به خدا است آخه؟ خدا گفته نماز بخوام خب پس پاشو دیگه صبح نماز تو بخوام نه خدا دوستت دارم آوشقت هم دل به تو میبندم در دلم جز خدا وجود ندارد همه نماز که حالشو نداری این دل آدمش میشه این به خدا دل امام زمانه به درد میاره به خدا دل حضرت زهرا رو میشکنه به خدا امیر المؤمنین رو دلش رو میشکنه بیایم دل امام زمان رو شات کنیم دختر خواهر مادرم حضرت زهرا رو دوست داری نگو نمیتونم هجاب داشته باشم بیایم قرآن و ورق بزن ای آیه نور رو بردار بخون برو روایات مکتب امام صادق رو نگاه کن اگر امام صادق تو به تو میگه دخترم هجاب داشته باش خب بگو چشم دیگه هایی بگو! هاج خانوم جرئت کن وظیفه دینی روشن فکر آبی رو بذاریم کنار بالا سر ما آورد اگر خدا گفته حجاب رو خب بیایم دقیق بشیم خدا گفته دین رو بیایم دقیق بشیم نگفته بسیار خوب بیایم بررسی کنیم از که اسلام دینی دین منطقه دین استدلال دین بررسی مسائل بیایم روی این زمینه‌ها حساسیت نشون بدیم چرا حضرت زهره سلام الله علیه هست سلمان وارد مسجد شد دید ابوذر نشسته پیغمبر زار زار داره گریه میکنه سلمان پرسید ابوذر پیغمبر چیشه؟ گفت نمیدونه چیزی نپرسیدی از ایشون؟ نه نپرسیدن خب خیلی کاری بکنیم پیغمبر خیلی متاسریشون از این تأثور در بیاریم عبوزر گفت اونقدر پیغمبر منقلبه که منم به خودم جرعت ندادم چیزی بگم چه کار کنیم والا فکر کنم تنها راه اینه هر وقت پیغمبر چشمش به فاطمه سلامالله علیه ها میفته خوشحال میشته بریم از فاطمه خواهش کنیم بیاد مسجد سلمان میگه چشم سلمان اومد در خانه از زهرا سلامالله علیه در زد بیبی جان پیغمبر حالش خیلی منقلبه سخت پریشانه شما تشکرید مسجد. شاید پیغمبر از این نگرانی در بیاری سلمان همین که این قضیه رو نعقل میکنه میگه از زهرا که میرفت پشت سرش میرفتم چادری سر عزت بود پشت سرش فقط دوازه وصله داشت این تو همین قضیه است سلمان میگه چه نگاه کردمی وصله ها رو شمردم گریم گرفت گفتم من در ایران بودم دختر حکام ایران رو دیدم در روم بودم دختر سلاتین روم رو دیدم اونا لفسوند و س و الحریر در چه لباس این دختر پیغمبر که یک چادر پشمی داره با 12 وسله این جنانی زمزمه می کردم گریه می کردم وارد مسجد شدیم وقتی وارد مسجد شدیم زهرا سلام الله علیها از پیغمبر پرسید بابا جان چی تون شده چرا اینقدر نگرانید دو تا آیه راجب به عذاب جهنم را پیغمبر خواند گفت دخترم الان جبرائیل آمد این دو تا آیه رو برای من آورد که سختی عذاب جهنم رو بیان کرد اینقدر من نگران شدم که این حال منه تا این آیه رو خون زهرا هم شروع کرد به گریه کردن. سلام الله علیه سلمان و گفتن ما خواستیم پیغمبر را از نگرانی در بیاریم اما خود از زهرا رو متأثر کردیم چرا این حساسیت نشون می آقا حرام خدا رو حلال خدا رو باید جدی گرفت چه نفسی از این نفس ما مخواهم بیریم پیشی استاد، پیشی مرشد پیشی راحنما ها بگو من چه کار کنم رشد کنم خب برید پیش خدا خدا گفته حلال و حرام حالا منافاتی با هم نداره اگر یک عالم ربانی متدینه با تقوای عالم اخلاق ارزنده باشه یه چیزایی فهمیده من نفهمیدم دست من رو بگیره قبول اما اگر با دین جور در ما، دین میگه آنی از نماز نمیتونی دست بکشی. آنی نمیتونی حرام خدا رو حلال کنی حلال خدا رو حرام کنی تا اونجا که روز آشورا ابی عبدالله علیه السلام پسر پیغمبره نور کشم پیغمبره وقتی خطاب میکنه جمعیت رو میگه مردم حلالی رو حرام کردم حرامی رو حلال کردم معناش چیه؟ یعنی اگه من حسین که جگرگوشی پیغمبرم حرام و حلال کرده باشم شما اینجوری با من به جنگید حق دارید معناش این نیست من پسر پیغمبر حلال و حرام کنم حرام و حلال کنم شما مردم با من پسر پیغمبر در بیفتید حق دارید ولی مگه من حرام و حلال کردم کی جرعت داره بیاد بگه حالا حرام و بذار کنار حلال و بذار کنار پس یک اگر میخواهیم تزکیه نبس بشته باشیم طبق قرآن طبق, طبق یک. واجبات را واقعا مقید بش. دو محرمات را بترسیم از حرام بپرهیزیم دیشب یه مقدار توضیح دادم. چند نکته رو تذکر بگم برم سراغ قسمت بعدی این محرمات میگم فقط ذهنتون به دزدی، به زنا به شراب خارگی نروا به روا به غمار اینا که معلومه اما جوان دل پدر و مادرتو میشکنی این حرامه خداون یه نظامی تو عالم گذاشته دل همسایتو میشکنی بندگان خدا به تو نیاز دارم میان به سراغه میتونی نیاز مردم رو برطرف کنی عذیتش میکنی آزارش میکنی شماستش میدی رو میشکنی و ها و ها کذا. تو این جزئیات خزیه دقت کنید این در روایات ما داره وقتی که حضرت یوسف به حضرت یعقوب رسید بعد از اون همه فاصله یعقوب به خدا ارز کرد خدایا راز این که منو مبتلایه به این درد فراخ کردی چه بود حالا ما نقل که توی برخی تفاصیر آمده خداوند فرموده باشد ندا اومده که یعقوب یه شبی گوستندی کشته بودید کباب درست کرده بودید بوی کباب شما فضا رو گرفته بود یه مستمندی از اونجا رد می شد کمی بیدقتی در حق او شد نه اینکه در درخواست کرد شما اجابت نکردین که از مقام انبیا دوره کمی بیدقتی صورت گرفت یک آهی از دل کشید برای توی پیغمبر خدا همین مقدار بیدقتی این مجازات رو داره این مکافات رو داره دنیا دنیا یه اسباب و علل یه اسباب و علل مادی در این دنیا ببینی بنده یه وقت یه تیکه یخو میذارم تو این کف دستم طبق نظام این عالم اثری ای که از این رخس در من ایجاد میکنه چیه خود دستم یخ میکنه یک زمان یه تیکه آهن داغ شده رو به اندازه اون یخ ولی آهن زوب شده است میذارم تو دستم طبق نظام علیت عالم اثری که میگذاره چیه کف دستم رو میسوزونه ممکن مدتها نعره بهس و فریاد بکشم یک زمان یه قطره اسید میچیکنم تو کف دستم اثر خودش رو داره این دنیای مادیه دنیای معنوی چیه آه مظلوم آه مادر نیازمند به شما آه پدر نیازمنده به محبت شما آه همسایه بیچاره نیازمنده به شما و و و اینا اثرات داره جهان خدا داره جهان مالک داره جهان امام زمان داره جهان صاحب خیار داره خب من هی قطره های اسید رو چه کندم رو کف دستم بعد هی میگیم چرا دستای ما سوراخ شده خب اسید چه چرا دلهای ما مرده است چرا دعاهای ما به اجابت نمیرسد چرا بلا نازل میشود چرا چنین است چرا چنین است خب ما هی نظام الهی را دا داریم در هم نبردیم لذا این روایت از امام سجاد علیه السلام فرمود اگر امر معروف نکنید باران به موقع نازل نمیشود زنا زیاد شود سکته زیاد میشه سله رحم کم بشه عمر کم میشه بزرگان به ذعفا ترحم نکنن برکت از مالشون برداشته میشه کوچکترها به بزرگترها توجه نکنن دعاها مستجاب نمیشه و این دعای کمیله که شبهای جمعه شما میخونید اللهم اغفر لیت زنوب اللتی ته به صدع تنزل البلات و غیر و و ها این بیان از تعمیر نیست؟ خدایا از تو میخوا ببخشی اون گناهانی را که بلان نازل می کند دعا را حبس می کند هر شب جمعه میکنیم بهش توجه کنیم بیایم راه عملی رو پیدا کنیم. این اسیددا رو بشناسیم. اسید مادی رو روی جسم مادی نریزیم اسیدهای معنوی رو هم. روی اون قلب معنوی خودمون نریزیم این ترس از حرامه لذا کسی میخواد تزکی نفس داشته باشه از حرام باید بپرهیزه و بترسه خداون ما رو دوست داره میخواد ما رشد کنیم واجب و حرام قرار داده نه برای خودش برای رشد ما اما چون نمیخواد ما خیلی هم در زحمت قرار بگیریم همان گونه که این مثال رو شب قدرم زدم که بهش انایت داشتی یه کلاسی گذاشته برای پنجا نفر درس میگه، در معمولا در جمع رعایت از اف معمول رو میکنه آقا زعیدترین رو ببینید بر اساس او مثلا اما حالا دو تا سه شاگرد تو این کلاس پنجا نفره آمادگی نشون میده میگه خیلی خوب این بحثی که من در کلاس کردم در ستح بود شما دو ستا جدا روشید براتون کلاس خوشتی بذارم. این دوتا رو جدا کرده چله هشتا که باقی مونده چله پنشتاشون میگن خدا رو شک که برای ما تکلیف سنگین درست نشد اما سه یه دیگه گریه میکنن عشق میریزن ناله میزنن میگن مارم ببر جز اون دوتا قرار بده در تشبیه در مثال مناغشنی سرز میکنم خدا کلاس عمومی رو واجب حرام گذاشت اما میخوای بیشتر رشد کنی اهلش هستی خ خب خدا قرار داده برادر برا در مستحبات گذشته چقدر مستحبات گذاشته ای مال خصوصیاست لذا میگه اگر میخوای تعالی بیشتر پیدا کنی صبح دو نماد نماز واجب شده تو دو نماز تو بخون وظیفتو انجام دادی میخوای قبل اذانم پاشو نافله شبم بخون بعد نماز صبحم بشین تغییبات رو بخون در روز قراعت قرآآنم داشته باش نوافل یومیت هم انجام بده و و و اینقدر امکانات مستحبی برای ما گذاشته که هر یک از این مستحبات یک اثر ایجاد میکنه ولی وای بر من ویچاره که اگه شیطان به سراغم بیاد از همین مستحبات هم چجوری میخوام استفاده کنم به من میگن عمل مستحبو انجام بده قربه به خدا پیدا کنی جز اون شاگف خصوصی ها اما من گفتم بنده خدا نماز شب میخونم روز مرتب تو آینه در جم هی که آینه نگاه میکرد آقا چی شده؟ ببخشیدان نمیخوام تظاهر بشه مخوام ببینم راسته میگن کسی نماز شب بخونه چهرش نورانی میشه یا نه ای وای از شیطان اصلا نماز شب گفتن تو دل شب تاریکی مخیانه این خود و خدای خودت در به دل کن درخواست عفو بخشش کن تکامل پیدا کنی قدرت استادگی پیدا کنی بر امیالت مسلط بشی اما گفت حالا از بس که تو آینه نگاه کرده بود و گفته بود آیا راسته که نماز شب نورانی میکنه دیگه این هر جور دیگه هی تو جمع آب میخورد همچنان قد آب میخوری گفت راسته میگن نماز شب و حمد سوره رو با یک قراعت خیلی قشنگی داشت میخوند داشت میرفت رکوب چند نفر میشنیدن که عجب قراعت قشنگی داره که آقایون اون روزم بودم صبحان ربیال عظیمه و بحمده از دام وقت شعر خاج آدم یادش میاد میگه اگه بناش رو توبه کنم باید از اعمال خوب خودم توبه کنم تا چه برست اعمال بدم اگه بناش رو توبه بکنم مستحباتو قرار دادن برای رشد بیشتر برای تکامل بیشتر شما همین کتابایی که برادر در اختیار من شما گذاشتن این مفاتیح رو دارید برغ بزنید برای شب جمعه چقدر اعمال مستحب داره برای روز جمعه چقدر اعمال مستحب داره برای های مختلف چقدر اعمال مستحب داره این اعمال رو انجام بگی مستحبات اون وقت گاهی هم مستحبات رو برای معاقبه برای ما قرار دادن کلا فرصت زیغه سری برم جلو واجب مقید باشیم دقیق اقای مخواند تسکیه نفس داشته باشیم حرام بترسیم و اجتناب کنیم سه مستحبات رو و من اند... منطقه در مستحباتم این نکته رو مخصوصاً ارز بکنم آقا شیطان گاهی از طریق دیگر وارد میشه ممکنه به اقتضای تکلیف هر فردی مستحبش فرق کنا یعنی شما الان یه طبیبی هستید آقا واقعا ادهی نیازمنده به شما هستن خیلی بحثای اخلاقی زریفه بحث تذکیه نفس زریفه شما الان تو مطبتو نشستید پنج نفر سه ساعت تو اتاق انتظار شما نشستن شما ببینید بندگان خدا رو مداوا کنید شما میگید که آقا نماز مغرب شا شده بنده مقیدم اول وقت نماز مغرب شا بخونه بسیار خوب ابن نداره ما سه ساعت منتظر موندیب 10 دقیقهم تو ارفاق انتظار شما میشینیم این نماز مغرب شا نخیر بنده یک سلسله اذکاری هست که بعد از نماز عشا باید بگم یک ساعت و نیم طول میکشه شما یک ساعت و نیم اینجا بشونید بنده اذکارم تموم بشه بعدین که اوتاقمن من, من نمیدونم برید از بزرگترها بپرسیدین درسته تو صبح بگینی که کار بنده خدا رو وندزی همون خدایی که از طریق اون ذکر می‌خواد اون نورانیت به دل تو بده از طریق بنده خدا را انداختن به تو میده تو برای خدا کار کن ببین خدا از تو چه خواستد این جمله یادت نره اوج کمال ما در تزکیه نفس این است که بنده خدا بشی بنده خدا یعنی چی یعنی خدا هر چی گفته بگم چش خدا اینجا میگه آقا بنده به دهکارم پورم تو جیبمه طلبکار اومده دمه در نماز دارم میخونم به من میگن تو نماز آقا طلبکار در حالت عادی صدای تلفنم متوجه میشدم حالا هر چی میگن طلبکار تمه دره نمیشنبم قنوت من دای جوشنگ کبیر شده چرا رو گول میزنی؟ ببینیم خدا از ما چی خواسته خدا بندگی خواسته است بندگی بنده یعنی مطیع مولا مولا هرچی میگه انجام بده بگو چش همین خدا که به شما گفته جوان حق نداری به صورت یک نامحرم نگاه کنی همین خدا میگه وقتی عقد کردی تو وظیفه داری از آسفی عاطفی بزند محبت کنی وظیفه داری زنت نوازش کنی وظیفه داری بزند برسی خانم همین خدایی که به شما گفته حجاب دینیت رو، غیرت مذهبیت رو به ای داشته باش خودتو حبس کن، تو صورت نامحرم نگاه نکن، اما وقتی زن شدی، شوهرداری باید یاد بگیری، محبت به شوهر باید داشته باشی، انقدر زرنگ باشی شوهرتو جذب کنی، به سوی خودت که گرایش به دیگری پیدا نکنه، او وقت من خیال میکنم حالا شوهرم خسته از راه رسیده، صبح تا غروب سر کار بوده، موقع اذان مغرب یهرو بیست دقیقه گذشته، شوهر از راه رسیده، خانم سر سجاده نشسته داره ذکر میگه، سلام علیکم. نه دارم فکر میگم کجا خدا اینو گفته به خدا آدم دلش میسوزه خانم پاشو استقبال شوهرت برو خبسه نباشی دست درد نکنه یا آب خوردن به دستش بده ولی شرحن تکلیف تو نیست که شوهر بگه چرا چای برام نیاوردی اما آتفه کجا رفته تو زهرا داری به عنوان الگو سلام الله علیها وقتی امیر دست زهرا رو میداره تو دست علی میگه علی جان برای زهرا قلام باش تا زهرا براد کنیز باشه زهرا جان برای علی کنیز باش تا علی برای تو قلام باشه بعد زهرا میگه بابا جان تکلیف ما را معین کن زهرا سلام الله علیها ها نمیدونه تکلیف شرعیشیه که پیغمبر میگه کار داخل منزل با تو زهراجان کار بیرون منزل علی جان با تو. اون وقتی یه روزی پیغمبر وارد خانه میشه، میبینه زهرا دست آست رو داره میگردونه، علی هم داره جارو میکنه، کمک میکنه. چند تو گهواره داره گریه میکنه. پیغمبر میگه به کدوم یکی کمک کنم؟ علی میگوید یا رسول الله به زهرا او خسته زهرا میگه یا رسول الله به علی او خسته تره. و من شیعه این علی و این زهرام تو زن شوهریم زرنگی تو زن شوهریم کلک زدن تو زن شوهریم با یه زرنگی او مثلا عجیر خودم بکنم این دلها تکامل معنوی پیدا نمی کند اگرچه روزی صد هزار بار بگوید از فاغ الله ربی و اگر اگرچه صبح تا شب پنجه رکع نماز اضافه بکنه تکلیف چیه؟ یا آقایی میگفت فکر کنم یه بار گفتم گفت من مکه بودم یه حاجت مهم داشتم یه ذکری رو چارده ازار بار گرفتم کسی از همراهان من فهمید اتفاقا به ایران نرسیده ما حاجت منو گرفت. اون به من زنگ زد فلانی یه مشکلی برای من پیش اومده این ذکر رو به من بگو منم بگم گفتم اشتباه میکنی چرا؟ گفتم من تکلیفم این ذکر گفتم بود تو زکرت میدونی چیه چون توان مالید با من قابل مقایسه نیست تو 14 هزار تا نه 140 تا نمیتونی 14 تا گوسفند بده به فقرا من اینکه این قدرت نداشتم مشاستم زیک گفتم تو بگو خدایا من این قدرت رو دارم 14 تا به بندگان فقیر توی ماه رمضان بدم 14 تا گونی برنج به بندگان تو در این ماه رمضان بدم و این که الان اینجا نشینم بگم الهی العف. به جاش پا میشم. حرکت میکنم میرم در خونه ی ذعفای برنج میدم بو روغن میدم بو اون گوسفندی میدم بو اون خدا اون در ذهن که داری حرکت میکنی بگو الهی هست در این تو مستحبات یعنی رذیف شناس باشیم نسبت به هر مستحبی که چگونه در کجا بود اون یه سری مستحبات هم گاهی میشه که تاثیر معاقبه ای داره اینو سری عرض کنم اجازه بدیدم شب کافی باشه میگن ما در مقام تکامل و تعالی تجلیه تخلیه تحلیه لازم داریم خیلی سریع اجازه بدید تجلیه جلا دادن جلوه بخشیدن برراه کردن شفاف کردن درخشنده ساختن تو جسم مثال بزنم اگر بدن منه من این بدنم رو میخوام الان یک شفافیت و یه بشاشیتی بش بدن چه کار بکنه؟ مثلا فرض کنید میگید که روزی چند بار اینجوری حرکت جسمانی داشته باشد شما اهل فند بلدید به من میگید من میگم چرد. چرا آقا در سیستم تربیت بدنی متخصص مطرحه؟ درست هم هست؟ کار کرده بندی خدا بلد من بلد نیستم. لذا میاد به من میگه همه دنیا من اینجوره. میخوای حرکت کنی تو 30 ساله اینجور حرکت کن 25 ساله اینجور 14 ساله اینجور 50 ساله اینجور حتی سن شما نحوه حرکت جسمانی شما فرق میکنه بگو که کمرداری حرکت اینجوری نکنی یا اینجوری حرکت کن برای جلا دادن بدنت اینه برای جلا دادن روحت این کارو بکن این کارو نکن میشه حرام حلال اینو خدا میگه برای تربیت بدنی متخصصش کیه همینایی که تو بدن کار کردن برای تخص تربیت روح متخصفش که قرآن میگه نکه انه روح قول روح من امر ربی و ما اوتیتون من ال الا غلیلا شما چقدر بلدید ؟ بجبه روح که چی باید چی نباید آقا ما الان تو همین جلسه روانپزشک داریم در این انیستیتوی روانپزشکی تهران ماهی یک جلسه هست ادهی از روانپزشکان روان شناسان و برخی از دین شناسان جمع میشن راجع به مسائل روانی بحث دارن چندین جلسه رو بنده شاهد بودم از متخصصین به روان پزشکی اروپا و امریکا در این جلسه بودن و بحث شده گفتن از ابتدای قرن بیستم تا الان این نوست سال اخیب حساب کنید به میزانی که برای پزشکی زحمت کشیده شده چند برابرش برای روان پزشکی زحمت کشیده شده ولی یک دهم یک صدم معضلات روان پزشکی به اندازه معضلات پزشکی حل نشد پزشکی خیلی پیش رفته. این جراحی های این داروهای کزایی تو روان پزشکی هنوز مشکل دارن چرا؟ مسئله پیجیده است راجب روح و تکامل روح و تعالی روح خدا باید بگه چه باید لذا خدا گفته حرام حلال واجب مستحب مکروب این حرفایی که خدا برای ما مطرح کرده خب این میشه تجلیه دو تخلیه این بدن من <تصفح> <تصفح> یه زمانی فضولات سموم تو بافتای بدن جمع شده جمع شده ذخیره شده بدن شده لخت بدن شده تمبل بدن شده بیحال یه دونه دست میخواد حرکت بده دهن دره می‌کنه خمیازی می‌کشه می‌افته بابا این نیم ساعت با حرکت جسمی بکنه که اینقدر لخته میگه بدن پر از سمم میخوام می‌خوام بهش مسهل میدن میگن باید آفت بدنش شوشو کنه یا انقدر وادار به حرکتش میکنن این سموم بدن بسوزه عرق بشه بریزه بیرون ما برای اینکه تجلیه با حلال و حرام فروردگار جلا بدیم تخلیه یه سری بدی‌هایی که در وجود ما اون رعایت‌های اخلاقی است حسد، غیبت، کینه‌توزی، دروغ این‌هایی که در دنیای درون ما داره زمینه درست می‌کنه اون سموم ایجاد شده است به بیان امام صادق علیه السلام اگر دروغ بده است فکر دروغ زنا بده فکر زنا مثل دودی است که توی اتاق پیچیده این فضا رو سیاه میکنه و تاریک میکنه لذا این که در دنیای درون شما شده تخلیه کنید این رو با توبه با اشریختن، با گریه با انابه آقا بدن جسمی من از سمه شما داروی مسهل میدید شستشو میده میریزه بیرون تبدیل به عرق میکنه میریزه بیرون توبه انابه با خدا آشتی کردن دل به اولیای الهی دادن اون سموم روحی شما رو شستشو میده بعدش تجلیه ببخشید تحلیه زینت دادن شما این خونه رو اومدید دیدید که دود سیاشی اول دود رو میدیدید بیرون بعد دیوارا محکم کردید میاد یه رنگ هم رو این دیوار میکشید که خیلی قشنگ تزیین بشه گچبری میکنید، نقاشی می‌کنید این تضیین روح شما با مستحبات تزیین کنید خودتون بیش از اون حدی که تقویت کردید تجلیه کردید این مستحبات رو به اندازه‌ای که توان دارید اون وقت بعضی وقتا معاقبه یعنی میاد میگه که آقا من مشارطه کردم به این معنی امروز صبح آقا امشب شب جمعه رفتم خونه منا هم نشستم خودم با خودم شرط بستم شب قدر خودم با خودم شرط بستم مشارطه من دیگه میخوام خوب بشم بس دیگه برادر جوون خواهرم بزرگترا من جسارت نمیکنم ببخشید بیایید امشب آخرین شب جمعه ماه رمضان ماه رمضان هم رفتا امسالم تموم شده شبای قدرم پشت سر گذاشتیم بیایید امشب رفتید خونه تنها برو تو اتاق برادرم چقدر خودت و خدای خودت خوهرم خودت و خدای خودت با خودت فکر کن اگر بخوای دیگه گناه نکنی بهتر نیست اگر بخوای دیگه دل امام زمانت رو جلب کنی بهتر نیست اگر بخوای این علی که اینقدر قرر مظلومه شادش کنی اره این که بگی علی جان هرچی تو گفتی جست خوبه قبول داری تا شرط ببند شرط بندی به این معنی بگو علی جان من امشب با تو شرط میبندم یب نل حسن امام زمان امشب با تو قرارداد میبندم من دیگه میخوام خوبشم تو رو به جان مادر زهرا کمکم کن یا علی تو رو به حق همسر زهرا مددم کن من میخوام خوب بشم دلم میخواد بنده خوب تو باشم ولی چه بکنم شیطان گولم میزنه تو یاریم کن این مشارطه اما کافیست بعد از مشارطه مراقبه مراقب باشیم. امشب شرط بستید فردا پس فردا شب جمعه آینده دوباره خلوت کن تو اتاقت بشین بگوید یه هفته که من شرط بستم چیکار کردم مراقب باشم انجام دادم یا نه محاسبه، حساب کن آقا شما اگر یه تاجر موفق باشی هر چند یه بار حسابدار شرکت تو میخوای فروش ما چقدر بوده سود ما چقدر بوده زرر ما چقدر چی کار کردیم برنامه بیلان به من بده میخوام برنامه ریزی کنم. بیلان عمرت رو محاسبه کن عزیزم علیه من و شما سلام الله علیه فرمودن حاسبو قبل ام تو حاسبو به حسابتون میرسن دقیقم به حسابتون میرسن ولی خودتون حساب رسی کنید حالا محاسبه کردی معاقبه معاقبه چیه؟ یعنی بنده حساب میکنم میبینم خدا یا شب جمعه قبل من قول دادم با خدا که دیگه دروغ نگم اما تو این هفته چهار تا دروغ گفتم اون هفته قول دادم دیگه حسودی نکنم تو این هفته دیدم که مراقب بودم و حساب کردم سه جا حسودیم شد رد شم معاقبه خود تو کن به چه صورت با خدا یا با تو قرارداد می‌بندم. از فردا هر دروغی که گفتم یه جز قرآن بخونم هر دروغی که گفتم درک اب نماز بخونم هر دروغی که گفتم یه روز روزه بگیرم بله رشد اولش این مثال خیلی زیباست میگن عادت مثل تاخوردن کاغزه، اول که میخواید تا بزنید یک کمی نیرو میبره ولی بعد از این که تاخرد دیگه راحت اونجایی که تاخورده بر با تکرار مستحبات تداوم مستحبات چرا گفتن هفته یه بار زیارت و آشوراتون قطع نشد هفته یه بار زیارت جامعه رو بخونید هفته یه بار دعای رو بخونید هفته یه بار ندبه ای را بخونید صبح ها دعای اهد نره چرا؟ این تا بخوره تا دیگه بعدش راحت میشه پس این مستحبات هم برای معاقبه هم برای اون مرحله تحلیه تأثیراتی میتونه داشته باشه که دیگه وقتم بیشتر اجازه نمیده جنبندی کنم اونایی که این معنا رو توجه پیدا کردن وجود مقدسه حضرت زحرا سلام الله علیه اونقدر نماز خونده که پاها ورم کرده جز خدا هم چیزی براش مطرح نیست این قضیه انارم امشاب براتون نقل کردن به شعرش خوندن قضیهش هم بگم نزدیک بشه سلام الله علیهاتو بستره امیر المؤمنینم کنار بسترش نشسته زهراجان نه سال تو خونه من بودی هیچی از من نخواستی حالا نمیخوایی چیزی از من بخوای امشه زهراجان سلام الله علیه ها ارز کردن که آقا جون بابام به من وصیت کرد نکنه از همسرت علی چیزی بخوای که نتونه بد بده و خجالت بکشه من تصمیم گرفتم هیچی از شما درخواست نکنه علی فرمودن این بار من از تو میخوام از من چیزی بخوای خب شما میخواید آقا میتونی اناری برام تحییه کنید اینم یه راز داره امیر همسری مثل زحرا نه سال تو خونش از او چیزی نخواسته حالا بعد از نه سال خودش از او خواسته اونم میگه یه انار معلوم میگه تحییه این انار برای علی چه حالتی داره اومد این ور اون ور سراغ گره گویه یهودیه این امیه یهودی این انار رو داره حضرت اومدن رفتن در خانه یهودی در زدن. آقا من بیماری دارم شرایطش اینه از من اناری خواسته اگه میشه انار رو آورد حضرت پولش رو داد تو راه داره میاد منزل صدای ناله ای علی رو به خودش جلب کرد وارد خرابه شد دید نابینا این ناله میزنه کی هستی؟ به معنا میگم بیچاره ایم در منده ایم شنیدم علی در مدینه به داد زعفا میرسه اومدم علی رو در یابم. من علی هم چه میخوای؟ آقا میشه اناری برام تهیه کنی عجب امتحان رو ببینید به زنگاه انجام اعمال برای قرب خدا رو ببینید این انار رو علی ولی زهره با این کیفی جد. سلام الله علیه ما تهیه کرده حالا خدا این سر راشت قرار داده علی که جز خدا براش مطرح نیست میگه حالا من انار میخوام میگه والا جوری من نصف میکنم نصفشو به تو میدم نصفشو برای بیمارم ببرم نصفشو آقا دان کردن تو دهان پیرامر ریختن پیرامر گفت علی جان نصف دیگر هم ازت میخوام فرزدق در اون شعر راجب مام سجاد داره اگر لا در لا اله الا نبود شماها لا نمیگفتی در گفت از این خانواده کسی جواب نفسی نمیشه این علیه که وقتی که میدان <تصفح> جنگ داره شمشیر میزنه دشمن نگاه کرد گوه اگر شمشیر قوی و زیبایی حضرت هرون میخوایی بدم به بیا دارد به ترم یه نگاهی کرد خودشو انداخت حقیقای امیر المؤمنی گو عجب آقای یا علی امشب یه کاری بکن ما هم دامن تو بگیریم آقا ما هم دامن محری رو امشب بگیریم سفت بکسبیم به این دامن و جدا نشیم آقا نیمه دیگر انارم دان کرد ده دهان اون پیر مدر دیگه روش نمیشه بیاد خونه رفت مسجد یه وقت امام مجتبه اومد تو مسجد بابا جون اناره رو آوردن چرا خودتون نمی آید اناره رو آوردن؟ بله جبرایل معمول شد یک طبق انار از بهشت بیاره حالا این علی چونین زهرائی رو میخواد از دست بده ابن عباس میگه پاسی از شب گذشته بود علی منو مأمور کرد که حسن و حسین رو ساکت کنم به فزم میگو فزه زینبین رو آرام کن میخوایم سر و صدا تو مدینه بلند نشه <تصفح> متوجه نشن وسیت <تصفح> زهرا رو آرام آرام ما بتونیم امشب اجرا بکنیم فزه داره زینب و کلسوم رو آرام میکنه عباس داره حسنین رو آرام میکنه بغز گلوی بچه ها رو گرفته شاید سرشون به دیوار میزارن ای گلوشونو رو نالشون بلند نشه اسما میگه منم آب میریختم علی داشت بدن زهرا رو غسل میداد یه وقت دیدم خود علی سر به دیوار بزن بلند بلند شروع کرد نعر زدن من داییدم آها جون بچه ها را آرام کنیم شما ناله میزنید فرموده باشن اسما دست از دلم بردار در حال غسل دادن دستم به پهلوی شکسته زهرا اصابت کرد